به کارگیری خوش و دانش که این هم یکی از ارکان مقاومت اقتصادی است که شرح داده شده در جای خودش شرکت, شرکت های دانش برنیان مجموعه دانش برنیان که خوشبختانه این مجموعه شما یکی از نمونه های برجسته دانش برنیانه و به کارگیری پشتکار کار رو بایستی دست کم نگرفت از پیشرفت هایی که به دست آوردید قانع نشید شائق بشید به پیشرفت های بیشتر قانع شدن به اون حدی که به اون رسیدیم ما رو متوقف میکنه و دوچار رکود میکنه و ابتکار ابتکار، راه های نرفته رو، راه‌های میانبر رو در پیش گرفتن،